بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله على سیدنا عصود الله و الطیبین الطاهرین المعصومین و نعتدائیمتا على اللهم افرنا جمعی از نصر رو یه روز عرض کردیم شباه دردش اشتباه بود دردش ناقص رو تکمیل بکنم یکی این روایت صدوق بود حدثنا سعد بن عبدالله عنه علیه محمد رازی که ارز کردیم ایشون رو نشناختیم نه ایشون علیه محمد رازی معروف است به علان کلینی دایی کلینی معروفه علیه محمد بن ابراهیم علیه کلینی عبدالرازی ایشون و مرغون متعرضه متعرزه حال شده و سقه تونه این در حقیق شده معروف الان کلینی و کتابی هم داره یه اخبار قائم علیه السلام احتمالا اینها از همون کتابش باشن کتاب اخبار قائم باز من امروز کتاب کافی هم نگاه که همین باب مرغوطه رو در این باب مرغوطه هم کلینی خیلی در از در باب حضرت محلی از همین حالیت محمده از استاد اعتقادشان که این علی ابن محمد ابن بندار بومیه نه خلاق زارده این علی ابن محمد علان نیست توصیق شده تأساس نجاشی و شخصیتی خیلی پرتحرکه اون علی ابن محمد ابن بندار تونجهی که ما میدونیم فقط از که غم مخصم پدرش نعمی کنه همون ایشان نه خیلی جهارسته این نسته سواح سباق و دیگران رو دیده فرد پرتحرکیه من خود من یادم میاد ده از, از این کتابی که اشاغال مستشرقین نوشتم گولدبیهر کی نوشته حالا این با این کامپیوتر میشه پیدا که اسم علان کلینی در این حوادث تاریخی به عنوان چهره معروف شعوبی که صلاح شعوبی عرض کردن در اون زمان به کسانی اطلاق بشه جزو ده خود قوم به خاطر اینکه اشایره صلفی سیاسی هم داشتن و عرب حسابش اشعار یمنی بودن اهل یمنی بودن در مقابل ایرانی ها در خود غم یه مقداری مباحث عرب و عجم مفرح بوده در همون زمان حتی به بعضی از بزرگار هم نسبت داده شده مثلا حتی نسبت داده شده که سهل ابن زیاد مثلا بو خاطر فارسی بودنش و تهرانی بودنشه مرحوم احمد عشقیشون از غم بیرون که حتی اون مساله درست نیست هر حال این بوده و حتی نسبت داده شده به خود مرحوم احمد عشقیش که شدیدن تأصاب عربی داشته این هم خیلی آی خویی هم روایت نیوردن فرنده روایت نیورد که دارد با اعثبیت شدیدش میتونه خوب کردن نیوردن روایت در کافیس در ابوالحجیه کافیس قبول اون روایت فوق الا مشکل سندش هم ضعیفه نمیشه قبولش کرد علان که شماکا این علی بن محمد رازی علان اگر آن ذهنشان با این کامپیوتر بگردن مواردی که علان قویلی یا علان رازی یا الان مطرح یه چهره شعوبی تو ذهن من مسادرشم تو ذهن هم میستند مثلا سیوارهای سال پیش دیدن الان تو ذهنم نیست، اما اسمش دیدن اسم حلان رو وایا واقعا همین ایشان به چهره فخالیست علایه حالا این دو روایت رو مرحوم شیخ صدوق توسط سعده نهبدالله از علان کلیمی نره کرده و ایشون توصیح شدن در حال مرحوم نجاشی ثقه تنهایه مثلا کتابی هم داشتن به عنوان اخبار الغار احتمالا از همون کتاب باشه من بیشتر خودم مطالعه نکردم این اینکه بعضی از مراجع گستری هم تو قاموس از کمالودی همین روایت رو آورده به گفت مراد همان الله درسته خلاص من خودم شکیده بودم اما بعد هم دیدیم که ایشان نغرد کرده هر ثرا بعد این راجبی در مطلب دیگری که در اینجا هست در همین باب عباب حجت در باب ایمان زمان یه حدیثیست اینطور علی یون نزر... در این چاپی ما نظر ابن سباه علی نظر ظاهرا آلخوی این حدیث اونجا اشاره کرده ان نظر ابن نه نرس دقیقی با زاد ابن سباه اینی که الان چاپ شده این که در کتاب کافی در بعدی از نصف شنه رو نشتید نصر اما اونی که الان چاپ شده نجا شده خوی برده باشن بله ایشون رو برده این نصر ابن سبا جلده 19 دسته من هست و ایشون در تقییمون شنه در این کافی جدیدی که چاپ شده نصر ابن سباهه و بجلیک به احتمالام چون اینجا موحشیش نوشته احتمال درستیه این بجلی هم غلط باشه بلخی باشه که نثر ابن صواب بلخی علان کلی از ایشان نروی میکنه بر این درسته این هم جزء اخبار کتاب اخبار القائم ایشانه اخبار الوهیم بهسا علان کلی اون علی چون علی در کافی غالبا علی یا ننهبی علی نورانی مراده اینجا که گفته علی یون امن نصر ابن سواه البجلی یه بلخی این مراد علی ابن محمد راضی معروف به به قرار این تشکیص داشت این هم راجع به ای که گفته نشده بود تذکر شدیم بعد در اینجا مرحوم استاد این روایت رو از کلینی در کتا از شیخ توصی در قیبت از کلینی از احمد ابن یوسف ساسی نقل کرده است در کتاب تنقید و کتاب آموز نوشت رفل کافی انه احمد ابنیوسو حاشه شمید جامدرسین ترکیه کردن نوشتی کافی جلد کنان صفحه کنان و اون سفه که ملاجعه نیست ظاهرا تو کافی نباشه بعیده تو کافی باشه و مهم استاد متعرض نشن چیلی بعیده ایشون از کلاب قیبت توصی توسی اوزن اشتباه چاپ شده حدیث از کلینی هست اما در کافی نیست. قرص تو قاموز هم نوشته خود این حدیثی که یا قروم اصلاد روزن به کلینی در کافی نسبت داشته ذکر سخم در حامش کردن من اون سخم راجع کردم نبود توی کافی من نگیدم حالا یه جلیه کافی باشیم با الله من پیدا شده اینم راجع به این قسمت یه قسمت دیگری رو هم ما توضیح داریم که این من به بازی کمی توضیحش که بیشتر ارز کنم راجع به خود نفس ابن سوا مرغوم کشی نوشته ایشون از قلاط کانه منر قلاط ما اونجا احتمال دادیم مراد قلوب سیاسی باشه و خود کشی باز اسم اسحاق ابن محمد رو برده اسحاق ابن محمد و اقای زن منو ارکان القلاط احتمال دادیم که اینها قلاط سیاسی احتمال بود دیگه اگه یاد آقای باشه ما در حد احتمال حالا بعد دیدم یه عبارتی رو در خود کشی او برده هم ترجمه تا حدی اصحابای رو محمد روشن میکنه هم کارهای قدم های اصحاب ما رو و هم اینکه که شاید در اینجا قلوب انحرافی باشه چون <تصفيق> کلوم هم گفتی بودم سیاسی چون در این که مثلا منحرف باشن نماز دخونن روزه نگیرن اعمال زشت انجام بودن مردان از ما رو باید بخونن این چون فائده لکیفی داره چون یه حدیثی که هست اینا نعم رو فتیان بنیه هاشون که اصحاب المحمد هم اصحاب محمد ظاهرا در بغداد بوده اصلش بسره بوده و ساکن بغداد بوده و از خاندان مالک عشره نوی برادر مالکه برادر اوشون نوی اوشونه لذان بهش هم میگن بسره هم میگن حالا نجاشی هم اسمشو اردنشه معذن و تخلیح مثلا این دیگه مرکز و اصل هر که کارهای درمداهون در روامدور مال ایشانه در کتاب کشتی این چاپی که من دارم مال مرحوم های مستقوی صفحه 530 یه عبارتیتون من همیشه میگم عبارت وقتی ناقص نیا دادن جور دیگه معرب میکنه حالا آره عباد کامل روشن بشه صفحه 530 به حسب شماره حدیثتون آقا به شماره احادیثم حاضر اسمیه 10 14 بال ابو عمرو که مراد تشفی باشه سألوا عن نظر محمدرضا مسعود حیاشی رو اسم دیگه رو برده فی, فی فلان فلان گفتن اسمی رو بردار من دیگه نباید بگمند ان جميع هاؤلاء که اسمایشون رو بردم من یه توضیحی رو صادران ار کردم به احتمال بسیار قوی اربا نمیدونن واقعا چون جلد ماست احتمالاً کتاب کشی حسب ائمه علیهم السلام بوده این کتابی که الان دست شماست تو اطهاب من نداره اینجوری که الان دست شما مثل اصحاب الباقر اصحاب خادق اصحاب کاظم. اما هست یعنی ترتیب کتاب مثلا اول اصحاب کازم بعد اصحاب رضا، بعد اصحاب حادیه این حدود اصحاب حادیه توش ننوشته اصحاب حادیه اما عملا هست حالا اون کشیه اصلی چی بوده من نمیدونم علمی گوفم نمدارم این در اواخر کتاب اونجا اصحاب امام حادیه سأل تا اول نهت محمد بن مسعود انجمی هاولا ها خیلی لطیفه برای ارزیابی بهتا کارهای رجالی و اینها دیگه شهادت حسی هم هست چون مرهوم کشی از مرهوم عیاشی می پرسه عیاشی دیگه اینها رو فقط اما علی ابن حسن ابن فضال که ما اصطلاح هم بشیم ابن فضال پسر سه پسر داشته حتما ابن فضال معروف پدره و واقعا هم خوالاده است ابن فضال پدر واقعا درستشون میشون چونی است وقت رایست احمد و محمد و به استرا علی علی از همشون مشهور سره ایشون یعما علی ابن حسن ابن علی ابن فضل تمار ایتفی من لغیکو بل ارا و ناحیه تو خراسان اخذ ولا اعظم من علی ابن الحسن بخوفه من علی این دیگه مولات حیدا لنم یکون کفاب عن الای مع علیهم السلام این برسه که ما کلی تاکید بریم ولم یکن کتابونی آنلاین، ان آنلاین، مثلاً از من کل انده. هم از علمی فوق العاده قوی، هم های رو ایشان داشت. لم یکن کتابونی من کل و به فیلم می‌بینیم از داوای نه بیان نه از کتاب، حزیز نه از کتاب، عجیب و بود. إلا انده. و کان لکن بن از غیر ان هو کان فتحه حد صحی هم, هم تلفظ شده باشه من هم هنوز نمیدونم درستش شدم کی یقولو به عبدالله بن جعفر عبدالله ارشد ثم بن عبدالحسن موسی علیه السلام رکن من اشقاط و ذکر مرحوم حیاشی ان احمد ابن الحسن برادر ایشان در سر دیگر ابن فضلان پدر کان فتحه این اجل و اما عبدالله ابن محمد ابن خالد تیالسی فما علم تو الا خیرن سقتن نبیه شهاده هستیه و اما قاسم ابن هشام فقد رئی تو فاضلا خیرن و کان یربی عمر حسن آثار حسن محمود هم و اما محمد ابن احمد النهدي و هو همدان الفلانسی کوفیون فقیهون سقتون خیرون و اما علی یبن عبدالله ابن مربان علی یبن عبدالله در این عباد خیلی عجیبه از مرحوم عیاشی این طور نوشه فه این یعنی ارغلا این یعنی احتمالاً مال مرحوم تشتیب باشه رو مرحوم عیاشی این طور نوشه فه این یمتهن و فی اوقات سروان اگر میکنیم تاییم خالی کیه وقت نماز نگاه میکنیم اگر نماز نخوند حاضر نشوی این جزو قلاته فعلا این در قوم یمتحن فی اوقات صلوات ولم احضاره فی وقت سلاته من وقت نماز باش نبودم در این جزو قلاته از یادم بهترکت میکنه ولم از معفیه لا خیوند اما خب چون متهم به قلوبه ایشون تمثل توقف میکنی و اما ابراهیم و محمد ابن فارس را فا فی نفسی داره به اصده لکن بعض من یعنی و هم اشکال در مشایخشه و اما محمد ابن یزداد رازی فلا اینا محض کلام من عبارت کلن خوندم برای اون ذکرش و اما ابو یعبوب اسحاق ابن محمد اینی که در این کتاب زیاده نخصیل نصر اون از اون حرومی میکنه و خود نجاشی خود کشکی هم گفته کان منرگلات و اما ابو یعبوب اسحاق ابن محمد البسیف این نفو کان غالی من تمام این در دارم دوردم اگر این گالی رو با اون عبارت خبری نگاه نمی‌کردیم، کردیم احتمال قلوب سیاسی می داریم لیکن چون داره فعی نبقا و یومتن این دماغات این متاسفاده نشون میده که این شب دو غلات غلاف بوده از کل یا غلافی ها داشتن علویه فعی یا و انراف عملی داشتن نماز می میکن همطوریشون گفته یومتن این اوقات صلاح این دبایت هم از این بهشون میگه گلوب نفسیت ها احسن احتمال چون مرحوم کشی هر داری یک جور میدیه و کانه منه اهل الارتفاق این و ایزا کانه از این نتیجه کشون گرسه نتیجه رو یک احتمال ما که مرحوم کشی نظرش به اون یارو نسر بن هم همین باشه این خیلی عجیبه و اما هبو یعبوب اصحابه بن محمد البصری فعنه هو کان غالیه که انصافش با قرن قبلی مراد غالی در عبارت ایشان یعنی منحرف اهل نماز نبوده و خیلی هم عجیبه که بازم رواست با اینا رو بردن به نهو کانخال یعنی او خود مرموم نجاشی قصه ای بر میکنه کنه و سر تو علی حلا بقداد لعک تو بهن من اونجا یز مشایخ هم بوده با تمام هرباس جزوه شیوخ حدیث بوده و سعر تو کتاب من انسخ رو گفتن یک کتاب از مسادر شیعه بده که من بنویسم. و اخر جهله احادیث مفضل ابن عمر بایی مفضله از صحبات چولانی که این نیست خیلی تطویل این تطویل مراد قلوب بود یعنی مجموعه روایاتی از مفضل در من در بود در بود فلم ارغفی خیلی مرحومه یا چیم صحبت معدبان صحبت من رغبتی به اون نشون ندادم دنبالش نگستم یعنی به دستان معدبانه مخواد بیده کتاب باطن بود فلم ارغفی فأخرج علی احادیث منتصخ من از اصلا حدیث پلان حدیث پلان مقداری از و ورعی تو مولن به حمامات مرایش حمامات که جمع حمامه کبوتر مرایش این کبوتر هستند که پاهاشون پا پر دارن جنا الانم مرعیششون و یومسه که آخری به کرده کفتر باز <تصحیح> رو داره کرد کفتر های پرپار رو کرده بود و دیگه هم و یر میشی فضل امساعته ها احادیست احادیست که هم در فضیلت نگهداری که شده و حبه احض و احفظ و منلغی تو بود یعنی با این که ایشون غالی بود و اوضای هم رو بشن روشد شد احفظ و منلغی یعنی معلوم میشه که حتی از ابن فضال احفظ بوده از نظر حفظ و اققان حدیث فوقلاده بوده اما ایشون هم بد درستی پیشش هم و هم, کتابی هم که در تقریر منصور بن فضل ابن عمر بوده بر اینکه علاوه این حدیثی رو که ما الان اینجا نقل کردیم اول سندش ابن ثواب بود دوم سند هم یع... اصحاب بن یعقوب دخلی که منظور شما هم, هم خوندید دیگه بحث اون حدیثه شدن فقط یک مطلبی مون اون مطلب رو هم ما تذکر بدیم و دیگه بحث رو تمام بکنیم و اندازه‌ای که امروز واجبه که ام مطلب خیلی طولانیه از کلام کدر... اصل مطلب راجبه کتاب کشید. و این آیا واقعا این چهست نستدن سباه رواهن حالا عیاشی یا رواهن خود کشی به اصطلاح از اصلا این که انصافا ما هم الان دقیقا نمیتونیم الان چیزی رو حکم اما اونی که الان در ما روشنه این کتاب موجود که به اسم کتاب کشی که قطعاً خود اصل کتاب نیست و موجد از کتاب مشکل اساسیش این قسمته چون ما کتاب رو ندیدیم و مرموم نجاشم یه فی کسیره کتاب درش اربات زیادید دقیقا نمیتونیم الان ارزیابی بکنیم کتاب کشی رو مثلا از تو نجاشی فهرست نمیشته به نوشته، اما مواردی که از کشی نقل کرده خیلی زیاد نیست شعالا هفت مورد ده مورد ده؟ قدم کم کردن مواردتان ها حالا نیست توی تحجیب هم هست که اوائلش نجام بیشتر هست موارد و از کشی نر میکنه و اشحال میکنه توی ذهن من هست مثلا پنجه شخص صفحه هفته صفحه اول کتاب رجیشی بعدم نیست من تو ذهنم از هست خیلی روش ندارم اجمالا هست. و هر حال خیلی روش حساب نگرده البته خیلی مثاله در کتاب کشی هست این رو ما در رجال شیخ میبینیم من چند بار موسیری گفتن کهشه گفته کسی رو سو این اجه نگفتن اشتبار تیز میری و گ باز یادن می رفت. هر حال چش تعریف میکنه کشتی اما کتابی که کسی رو توان نمیگه،فییه اوقل از اون کثره موم جاشی رو نمیگه و اما مده خاصی برای کتاب نداره خود کشی رو تعریف میکنه کسی بالا علم خوان و درستن هست مرد با اطلاعی اطلاعاتش فرابانه اما انسانافاً، کتاب امر واضحی نداره کتاب خود کشی یه مقدارش به خاطر اینکه ایشون بزرگان رو کمتر دیده ایشون تا اون بیشتر در طبق مشایخ من چند در این مقدمه ای که ایشون مرهومه های مصطفی نوشتم یه لیستی از مسادر مشایخ مرهومه کشی دادن این از این صفحه 14 ایشون یه لیستی دادن تهیه کردن از مشایخ کشی که 53 تا از مسائل مشایخ اینها روشن نیستی این مطلب که رو روشن نیست. این اصلا روشن نیست و ادعیه از اسماء مشایخ این اسم علی بن حسن نوشتن در دو جا ازش کرده این علی بن حسن این که عیاشی نعم میکنه مثلا بله در از محمد بن بندار قومی نوشته اینجا این جنب نمی‌دشه، درکین هرچی از ابن بندار در کتاب در یافت رو بختهئیه، جز مشایخ ایشون نیست. من حالا بارد این داخلی من که لو بحث داشته‌م، مشایخی که 53 سالشون هست داده، ایدهش غلطه، درست نیست و از این ادعا حالا تفسیر مثلا من بار مثال می‌خوام، میگم محمد رو مطرح حدود مثلا 478 تاش رو میشه تقریبا قبول کرد، از این 478 هر 56 تاش مثلا قابل اعتماد می‌شناسین؟ موظم مشایخش مشغوله آشنایی باشون ندارم حالا نفسرین سباح هم روز مشایخ روزه که تذکیف هم که روزه ارکان و پلوک علایه حاله ما با نظر به مشایخیشان و تحملی که ایشان حدیث رو از مجبه زن نجاشی هم داره شیخ هم داره یر زعفا شیخ نیدم نجاشی دیدم یر بیعن زعفا همینطوره خود این پیش قدم ها چون قدم ها مستقیشون بود یکی از علامات تزریفی یعنی زعفا بود ولو باشه ماشه احادیثش یعنی به اصطلاح بنده ورزه فهرستی احادیثش از ضعیف. خودش گروه نگفته مستر کرار وقتی استاد ضعیف بود مستر سریع بشه نرسیده. پس یکی از مشکلاتی که خود این کتاب نداشتی انصافا کتاب کشی مشکلات داره این یک دو ما دقیقا هم نمیدونیم شیخ توسی چی کار کرده. این مشکل بزرگش اینه اصلا اولیش حالا حد چی بوده افرالله و اما دومش که این مشکله اصولا مرگوم شیخ توسی چه کار کرده کتاب غلط بوده تفصیل کرده من کراران حرز کردم شیخ توسی این کتاب رو در نجت تفصیل کرده من چند بار حرز کردم تا اونجایی که ما میدونیم از مدتی ده سالی که تقریباً شهر ده سالی، ده سالی که در نجف بودن، دو تا کار از شیخ بیشتر خبر نداریم این که عملیه. اونم هم تو شیخ میشدن. مثلا فرض اولی که بغداد اومدن سال 408، 409، مثلا اصل فلان، کتاب فلان، کتاب فلان, کتاب فلان، مثلا 40 تا 50 تا 200 تا 300 تا حدیث رو داشته که اجازه بوده. میشسته شروع میکنن، حد از اون فلان فلان رو میخوندن، این می اینه که که از یکی هم تلخیص کشیه دیگه مواصیف توصی در نجب کار الی سراغ ندارید و اینم نشون میده که شیخ واقعا دیگه در نجب بود. چون شیخ طوسی اون وقت واقعا شیخ اون اونجا بود اینکه اول جوانی که بغداد در حالا ممکنه بعد در یک مخصوصاتی پیدا باشه هیچ نسخه از وجال کشی اختیار ما نیست البته گفته شده بعضی جاها علامه از کشی نقل در این کتاب نیست گفتن شاید اینطوری گفتن شاید نصه از در پیش علاموده شاید دقت فهمیدین این کار اگر بشهی به نظر من با کاری لزمی باشه این کتاب موجود خیلی به همیشگی داره اگه قرار ما دیگه از مشکلیتون علیت حسد نمیشه با اینکه علی نعتا اینقدر به کسری که قطعا عیاشی باش ملاقات کرده و خود کچی قطعا با اون ملاقات کرده طبعشم مصادره بود دقیقاً این کتاب خیلی خیلی به درکاشیده است. خیلی به درکاشیده است. یعنی احادیثش غلط‌های لفظی، غلط‌های به خاطر تحریفی کتابتی زیاد داره. حتی بعد در از ترجمه‌ها، یک ترجمه هست مثلا در صدر ترجمه نوشته صبیر، اما در خود روایت شده شدید. مال شدید یا مال صبیر؟ مال کتش دیگه کیه؟ یعنی این مال صبیر یا مال شدید. خیلی مشکل داره. کتاب موجود کشید خیلی مشکل داره. قیل از این مشکلات چون این مشکلات من اینجون آقای مرحومه آقای آی مرحوم آقای توستری نوشتم آقایون اگه این کتاب مراجعه کنه یکی از خوبی های کتاب قاموس که قبل از ایشان کسی انجام نداده یعنی ما الان خب... ناید. من نایده ایشان تنها تقریبا اولین کسی که سعی کرده خیلی از تصیح ها و قلط های کشی رو تصیح بکنه می‌دونه عبارت خالص زیاد تحریج زیاد تاثیر می‌کنه البته این کار رو نه حالا که این شده در کل مرغولات کشی نگردن اگه می‌کردن خیلی خوب بود بعضی‌ها هم زیادی رفتند بعضی مثلا گفتن این، اینطوری عکسشینی مناسب اون معلوم نیست اما به طور کلی یکی از قدم‌هایی که ایشون در رجال ما برداشتن که قبل از ایشان کسی این کار نکرده بود و حتی آهی که بعد از ایشون مثلا مرامای خوبی که نوشتن متأسفانه ایشون هم این کار انجام ندادن یکی از نکتایی بسیار بسیار خوب خاموز گاهی عبارت کشی رو میاره میگه اینا غلطه این عبارت اصلش اینه این عبارت اصلش اینه خیلی غلطها رو توضیح خوب داده من از کافی نیست کافی نیستم کلامه هنوز هم کتاب غلط رو داره با اون هم غلطه که گرفته باز هم کتاب هنوز غلط دارم و قیل از این, این نکاتشون چون گفتم من دیگه چون مبنان اینه که اون نکاستی که زیاد گفته شده خیلی صحبت نمی کنی. اونی که ما الان داریم مثلا همین که من باز کردم همین صفحه چهار رو برای جرفتیم مثلا ابو محمد جبریل ابن محمد الفاریابی چون این نه احمد الفاریابیست ده ها مورد تو کتاب بکن. این محمد و احمد جانجاشت زیادی این جور کلت ها در کتاب خیلی زیادی. ما الان به شیخ توسین نسبت نیمون جا نصاف کتاب بوده. از این سه قلط ها احمد محمد این جا و جا شده خیلی از این قلط ها در این کتابه. هست کتاب نجاشه اما خیلی کمه تو این کتاب فوق العاده مثلا اینجا ابا محمد جبیل ابن محمد تاریابی اینجا ایشون استاد عیاشیه ایشون استاد عیاشیه حالا حدیث قدیش محمد ابن مسئوله اینم مال عیاشیه این جا و جا شده الان که نگاه میتوند تو خود این کتاب نوید جریل احمد از مشاهده کشکی نه از مشاهده ایشیه همین از اول کتاب این غلط خدوطی از اول کتاب هست امهام هست اونیدی که الان برای ما خیلی مشکل شده که واقعا مشکله در همین نسخه موجود ما مثلا بینه همین حدیث صفحه پنج حسین ابن سعیدن اسمایل این بود محمد ابن اسمانه باشه خب اینقدر غلط خیلی فرها اینجوریه که حالا شما طرف دیگه هر سفی دو یه خلفی درش باشه محمد احمد در اصل حسین خیلی خیلی چیز که یعنی حد قیر طبیعی مقدار کار چیزی که برای من خیلی تعجب آور بود که این هنوز برای ما حل نشده که خود ما هم مشکل کارمون در حقیقت اینه اینی که در صفحه 5 حدیث شماره نوم این طور داده این کتاب موجود. محمد بن مسعود الهیاشی و ابو امر بن عبدالعزیز. ابو امر بن عبدالعزیز کشیه. قالا حدث ما محمد بن مسایه. این <تصفيق> خیلی حجیبه. اگر ما باشیمون این عبارت. این اوائل کتابه. این احتمال خیلی در ذهن تقریبیت میشه که شیخ دو تا کتاب ترخیص کرده نه یک کتاب خوب تا که؟ چون کشی کتابش اسمش عربیجاله هم نجاشی هم مرحوم شیخ اسم کتاب رو که بردن عربیجال کتاب کشی اسمش عربیجاله الان این کتاب که چند چاپ شده اختیار محرفت عربیجال این عنوان جعریه مثلا اون چه که ما از کتاب مصرح که کشتی داریم همچه عنوانی نداره اختیار معرفت را شده ایاشی کتابی داشتی رو معرفت و ناغلین اونم رجال بوده اسمش معرفت و ناغلین کتاب عیاشی معرفت و ناغلین آیا شیخ دو تا کتاب رو تلخیص کرده این هم که مثلا جبیل و احمد ما کتاب ایاشی از اینجا برده و اجال مشرق کشتیه دفت این اشکال اساسی کار به ذهن من اینه این از مشکلی که ما داریم با کتاب کشی اینه ولذا اگر دیدیم یک کسی مثلا آنیان حدث این حساب سوا خب این احتمال داره کتاب عیاشی باشه این مشکل کار اینه مشکل اساسی این کار متاسفانه اینجاست یعنی واقعش این مقضایی بر ایوه هم ایجاد کرده چون بگیر نتونیم بگیر این هم غلط بلوته اونی که تو زهن ما بوده این طور باشه ابو امرفن عبدالعزیز این محمد بن مسعود این طور باشه اینجا دو شده محمد بن مسعود اله یاشی و ابو امرفن عبدالعزیز قالا حد دستنا آلا خیلی از امیخال کله میخلیخ خلوط شده باشه خیلی موکلبه خیلی باید خلفات توشو که خواهد میشه اینم نه هم تا حالا حتی کسی احتمال داده باشه این مسئله ما وجدان دیده بودیم. همین الان خوده برای صفحه اول کتاب کی یک مطلبی رو که ایشون نقل می‌کنه این بود کلام عیاشی باشه مثلا یه اول حدیث جبرئیل محمد فاریابی که یهو این کلام بود عیاشیه برای ما واضحه هست. کلام عیاش کلام کشی نیست لذا یه جای دیگه داره وجد تو به خط این مال کشیه لذا به شما قائله یاد بگی و سوال دارم اگر بود جبرئیل محمد فاریابی این مال عیاشیه اگر بود وجه تو به خط جبری ربن مال کشکیه چون کشکی ایشون نکرده و ایشون کتابی داشته آن مفاخر اهل البسرته و کوفه جبری ربن احمد و قاریابی ایشون نمیشنستی بیش رشن. حالا اوناش جای خودش یک مشکل بزرگی که الان در کتاب کشکی هست اینه تصادفاً در جایی که این ایباره هست حدیث قبلیش اینه نصر ابن سواه بلخی قال حدیث ما احم انصافا به لحاظ طبقه خیلی مناسب است که قائل این کلان ایاشی باشه قائل این کلام ایاشی باشه که اصلا هم به همون ارتکازشون گفتن آخوی سعد بن عبدالله در رسوی مشاعق کشیه سعد از علان کلی نیم هم نصر خود نصر در رسوی مشاعق کشی باشه پس روشن شد این یک مشکل کلی در کل کتابه از کل ما این که من رو توستری واقعا در اینجا رحمت کشیدن از این رحماتی مشکوره این مطلب رو اولین بار من دیدم به ذهن قدم ندیدم که اصلا ما هنوز معرفه این کتاب رو دریغا نمیدونیم شیخ چه کار کرده این دو, س... دو تا احتمال رئیسی توش یاد آقیر از اشتباه باشین عبارق اینجا یکی اینکه شیخ دو تا کتاب رو ترکیب کرده کچه سر هم امرده رجال کشی با معرفت و ناغلین ایاشی از این کتاب یک تحقیق جدید میخواهد از این کتاب باید کتاب رو کهی به هم ریختن یک بزعه دیگری داره این یک احتمال یک احتمال این است که خود مروم کشی در رجال خودش معرفت و عیاشی ایاشی باورده مثلا ببینید در کتاب معرفت ناقلین ناغلین چی بوده؟ حدثنی جغیله، حدثنی مثلا نفسد سباه کشی همون عبارت به عیمه ها برده همون عبارت رو لذا این اشکال مرحوم آی توستری و دیگران و آی خویی که اگر روا انحول حییاشی در کشی زیاد به حدثنی نفسد سباه این اشکال منتفیه چون قائل حدثنی رو سهلا نمیدونی کی قائل حدثنی آیا قائل حدثنی است؟ یا قائل حداثه نیا عیاشیه. این نه. یک الان در این نسخه ای که ما داریم اصلا مقدمه شیخ توسیه که یه مقدمه برای این کتاب سینتاوس در کتابش خورده ما که میگیم نجف به اعتماد به اون نوشته میگیم ولی ما الان نداریم. یعنی در این نسخه مکتوب در نسخه مکتوب از اول که شروع میشه قال قال الفلان حدثنا فلان. اسکی یک یک صفحه رو سر تاووس نمی میکنه مقدمه کشی که شیخ در اونجا این تلخیص در نظر انجام داده انعانم با این چاپ نشده با این چاپ اون یک صفحه چاپ نشده نقدر میگم؟ اونم ما به اعتماد اون میگیم اون خیلی یقینی یقینی ما نیست او اعتماد اون داریم زاهره نه نسخه این و ما و علامه میگن علامه شد چون یه چیزی علامه نامت در کشتی است میگن شاید نصیحت مرا معلم انصاف دزدیم نمیداد شاید نصیحتش خیلی چیزی شدی نامید که اونا بدن انصاف. هست یه مشکل کوچیزی که به نظر من هیچ این کتاب بانوانی که از مصادره جالیه ماست و انصاف هم کسیال اینه. لکن تلت ولت تویش زیاد شده. یعنی یکی از کاره ملاقاتی در ابرازه احمد و مهمت که دیگر در همی تقصد دیدیم که در هر سفیل چند تا غلط داره غیر از این غلط ها یک مشکل خیلی بزرگ اصلا ما نمیدونیم این کتاب چیه کار شیخ اصلا چیه اونی که ابتداعا به ذهن میاد با این عبارت قالا هر دو کتاب رو تفسیز کرده احتمالش اینه احتمال دیگه اینه که در شیخ هم قدس الله نفسه در این تفسیز مساله دیگه نبوده، عمر بر شیخ هم مشتبه شده خیلی عبارات مال ایاشی هستن خود کشی مثلا کشی میهه عبارت قمیده های کشی محمده نمسول برداره جرلیل نحمد چه خرجونه که این جرلیل نحمد تفیمه کلام ایاشیه. بعد برداره مستر نصبا این هم تفیمه کلام ایاشیه دقیقه سر یعنی مرحوم کشی اگر یک جا ایاشی نرکده حدیث بعدی نگه انهو انهو رو نیورده بدرشه این کتاب عیاشی رو آورده ما بلاخره هر حال باید چیزی رو اگر بخویم باید پیش پیش‌فرض رو در اینجا بگیریم یا دو کتاب بوده شیخ مندمشکی این خیلی بعیده چون اندماج به این دقت که مثلا در اشخابر حادی از این بگیر با اون از قابل امام اله صادق مثلا هی با هم مقابله بکنه یک فکری از کشی یا یک فکری از عیاشی بیاورد خیلی این به ذهن ما بعید میاد احتمال قویتر همینه الان تو ذهن ما احتمال قویتر همینه که کتاب کشی بوده شیخ موارد نقل عیاشی و کشی رو خرک کرده نه اینکه شیخ خرک همین همون که دیده نقل کرده مرحوم کشی به اعتماده قراره نه کرده عادتاً ما باید مثلا بگیم انها انگلان انها ان نه انصافاً به لحاظه طبقه و زمان احتمال این که نصر ابن استاد عیاشی باشه وارده و مناسبتر هم هست احتمال این که استاد کشیان باشه هست مشکل این الان ما رو این کتاب موجود نمیتونیم حکم بکنیم و صادران هم وقتی هم این بحث متعرس رو میگه بحث تمامش بکنیم از این مشکلی که هم نعرض کردیم یک جاهای کتاب که خیلی حساسه این مشکل اونجا تو میکنه. مثلا اصحاب اجماع اجماع اصحابه خب این قائل این کلام باید یک کسی باشه با علمان نشسته با مراجع و قوله بوده ما با شخصیت های شیعه نشسته اجماع اصحابه قائلین این کلام چیه؟ ظاهرش این کلام کشیه لیکن طبق احتمالی که ما بودیم شد ایا باشه؟ اگر کشی باشه خیلی ارزش نداره تو این کشیه اصحابه رو نگه رو مشایخی میگن که در دوم سومه خیلی ارزش خیلی نداره اما اگه عیاشی باشه عیاشی بغداد باشه کوفه باشه رفته باشه بزرگانو میده با اکلای از خیلی ارزش پیدا میکنه میتونه کلام تشریحه رو به علاوه باشه خب باشه اگر برگرده به عیاشی قائل اجماع عدل حساب عیاشی باشه ارزش داره اگر از اصابه خود کشی گفته ارزش خیلی ضعیفه چون در بعضهاب از ما حتی بعد جا به ساله نشتم. ندیدم هیچ کسی بیر این نقطه تنبه پیدا کرده باشه که اصلا قائل این اجماع کیه؟ از اطل اصاده رو کی گفته؟ تقریبا در کلمات علمای ما آمده که شیخ توسی گفته و از کشی گرفته ولذا این اشکال پیش میاد که اگر شیخ توسی از کشی گرفته شده باشه گرفته باشه ارزش علمی اون ضعیفه خب شاید شما سوال به من از کجا میگم عیاشی مطلب رو گفته خب سوالو بزاره با کشی بره دیگه عجب راهم که اینو چون قلمو نرنم تو اذهاب اجما در این کتاب کشی این فایده دارم داشته باشیم تو به دیگهش از گفته نشه براتون در این کتاب کشی صفحه 343 45 این واسه که بیشمار هست شماره 639 ببینید اینجا اینو داره قال محمد بن مسعود اینجا تصریح میکنه که این مطلب مال عیاشیه سه بار اجماع رو بکار در مکش... این کتاب سه جا اج... اجماع اتره اصابه زده شده هیچ جا اسم قائل نیامده اما در اینجا چون اصحاب ما توجه نخوندن کلیه قائل محمد بن مسعود عبدالله بن بکیف و جماعتون من الفتهیه هم فقه ها و اصحابنا شدیه هم دعوی اجماع. لیکن اینجا سراحتا به ایاشی نسانده بارده <تصفيق> آل محمد ابن مسئول عبدالله ابن بوکی و جماعتون من الفتحیه هم فقه و اصحابنا منهم ابن بوکی و ابن فضان یعنی الحسن ابن علی پدر یعنی و امار و ساباتی و علی ابن اسبان و بنو الحسن ابن علی ابن فضان که از کم ستان بچه های حسن علی و احمد و محمد يعني و اخوا این به نظر غلطه وعنی و ابن حسن و علی و حسن و اخوا این ابن حسن و اخوا و ابن حسن و اخوا و ایمونو سبن یعهو و معامیت ابن حکم و عد بله و عدتون من اجلت الگلما خیلی شبیه اصحاب اجماعه عدتون من اجلت الگلما ما به قریمه این عبارت احتمال دادیم. قائل اصحابه اتش ما هم عیاشی باشه. عجمعته اصحابه. روشن؟ الان از اصحاب ما این عجمعته اصحابه از کشی نبلadenه. من خودم احتمال دادیم این عجمعته اصحابه. قائلش عیاشی باشه. اگر قائلش عیاشی باشه. افاقت عرضش داره. اما اگر قائلش کشی باشه. ازش داره. چون با بزرگانه اصابه چیز نداشته ارتباط نداشته و لذا الان این نکتیر که اصطورا نکته بسیار مهم درباره باره کتاب خیلی از من خیلی مختصر است این کتاب خیلی غرق قلود داره تحریف زیاد داره آیتوسری مقدار زیادی رو تحصیح کردن هر روز خیلی کار داره